أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واصيما مولانا وصاحبنا بغية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسان صرواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا محافظا مقائدا مناصرا مدليلا معينا حتى تسكنه أرضك روعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا مولانا يا فاطمة الزهراء السلام عليكم يا أهل بيت النبوة به الله در نقد ادله نقلیه وحدت شخصی وجود وارد شدیم در جلسه گذشته اجمالا توضیح داده شد که خود ابن عربی و شاگردان هم مسلک ابن عربی و شاگردان تعالیم ابن عربی به این مسئله معتقد هستند که باید به زواهر قرآن و اخبار اخص کرد و ملاک حجیت تعویل های اونها و برداشت های اونها از آیات و روایات همون حجیت زواهر هست ولو اینکه عملا به این ملتظم نبودند و کما اینکه که انشاء الله مشاهده خواهیم کرد در این بحث هم التزامه به این مسئله ندارند اما این ادعا رو دارند و میخواهند وحدت شخصی وجود رو از ظواهر قرآن و آیات استفاده بکنند و طبعا باید در این بحث خود آیات قرآن رو دلیل بر وحدت شخصی وجود بگیرند نه اینکه چون از جای دیگری مثلا با ادله عقلی یا با شهود این مسئله ثابت هست الزامن آیات و قرآن هم باید این را بگویند و این معنا را بخواهند به هر نحوی که شده اشراب بکنند به معانی قرآنی و روایی و طبعا این دیگر تمسک که به قرآن و روایات نخواهد بود یکی از آیات و از جمله آیاتی که اونها برای اثبات وحدت شخصی وجود به اون تمسک کردن ما میتونیم این عنوان رو براش قرار بدیم آیات قرب آیاتی که خداوند متعال در اون آیات بیان میکنه که ما به بندگان خودمون قریب هستیم ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توصف تو بهی نفسه ما انسان رو آفریدیم و ما علم داریم به اون چیزی که نفس انسان به انسان وسوسه می کند و نحن اغرب و الیه من حبل الورید ما از رگ گردن به انسان نزدیک خوب خب به این آیه تمسک شده برای وحدت شخصی وجود به این بیان که خداوند متعال در این آیه می فرماید که ما از رگ گردن به خود انسان نزدیکترین خوب خب رگی گردن جزء وجود انسانه جدای از وجود انسان نیست که فاصلی این بین باشد که مثلا نسبت به اون فاصله خدا نزدیکتر است بلکه رگهگردن خود وجود انسانه جز وجود انسانه لذا در واقع معنای می میشود که ما از خود انسان به انسان نزدیکتریم از انسان به خودش نزدیکتریم از فرد به خودش نزدیکتریم خب این نزدیکی که دیگر معنا ندارد و در واقع خود اون فرد خودش هست فاصلی در این بین وجود ندارد که بخواهیم ما بگیم چون فاصلهای وجود دارد مقداری وجود دارد خب قرب هم مثلا معنا دارد و اقرب بودن هم معنا پیدا میکنند به خداوند متعال در این فاصله مثلا خداوند متعال نزدیکتر فاصله کمتری دارد به انسان در حالی که اینطور نیست خود شخص خودش هست اصلا دوئیت و جدایی وجود نداره که ما بخوایم بگیم که چیز دیگری مثلا نزدیکتر است لذا طبعا در اینجا قرب معنا نخواهد داشت و اینی که خداوند متعال میفرماید ما به انسان از خودش نزدیکتریم ما به انسان از لگه گردن به خودش نزدیکتریم. طبعا این باید معنایش این باشد که ما خود انسانیم و وجود انسان همون وجود خداوند متعال است و چون در اینجا قرب معنا ندارد طبعا باید اینجا معناش همون بودن وجود انسان وجود خدا را یعنی خداوند متعال وجودش همون وجود مخلوقات هست از وجود خداوند متعال مخلوقات پدید آمده است. لذا خداوند متعال در این آیات بیان می کند که ما از خود انسان به خودش نزدیک تریم معناش این است که ما خود انسانیم آیه دیگری که بهش تمسک شده که این رو هم می جزو آیات قرب بدانیم نحنا اقرب علیه من کم بلکه لاتو بسرن آیه قبلی سری قاف آیه 16 بود. این آیه سری واقع آیه 85 که در مورد لحظات احتجاز که در لحظات احتجاز فعّاب لغت الحلقون بنتم حين ازن تنزورون و نحنا اقرب علیه من کم بلکه لاتو خداوند متعلّم فعّماهاد ما به اون شخصی که در حال احتزار هست از همه شما نزدیک در اون حالت بستگانی که دور اون فرد رو گرفتند به اون فرد نزدیک شدند چه بسا خودشون رو به اون فرد چسبانده اند. کسی مثلا خودش رو در بغل اون شخصی که در حال احتزار هست این به اون چسبیده اما با این حال خداوند متعال بیان میکنه که ما در این حالت از همه شما به این فرد نزدیکتر هستیم خب در اینجا هم فاصله ها بسیار کمه و احیانا فاصله ای وجود نداره لذا طبعا نزدیکتر بودن معنایی نخواهد داشت پس لابد که خداوند متعال اراده فرموده که این را بیان بکند که ما همون وجود اون فرد هستیم وجود اون فرد همون وجود ماست دوریتی نیست که از این تعبیر شده که ما از شما به اون فرد نزدیک تریم که طبعا این با اون توضیحات خاص خودش که در وحدت شخصیه بیان کردیم میتواند دلالت بر وحدت شخصیه وجود بکند که این فرد اصلا وجود منحازی از وجود خدا ندارد وجودش همون وجود خداست و اینجا حسرت کنایه از عینیت کناره کنایه از وحدت کنایه از یکی بودنه آیه دیگر که ولو در این آیه لفظ قرب نیامده اما خب مفادش همین مفاد آیات و اعلموا ان الله حول بين المرء وقلبه و انه تحشرون انفال آیه 24 بدانید که خداوند متعال حائل شده است بین انسان و قلب انسان و شما به سوی خداوند متعال محشور می خب قلب انسان که جز خود وجود انسانه دعیتی ندارد جدای از وجود انسان که نیست وجود انسان متشکل از قلبه لذا طبعا معنای آیه همونطور که در آیه اول عرض کردیم همین می شود که ما به انسان از خودش نزدیک تریم. به فرد از خودش نزدیکتریم خب نزدیکتر بودن فرع بر وجود فاصله است که ما یک فاصله ای رو با فاصله دیگری بسنجیم و بعد بگوییم این فاصله کمتر از اون فاصله است و این نزدیک تر از اون فاصله است وقتی که فاصله ای وجود ندارد وقتی که خود همون فرد هست وقتی که عین هم هست اصلا جدایی نیست عینیت یکی بودنه لذا دیگر قرب و اقرب بودن معنایی نخواهد داشت طبعا در این آیه هم اینی که خداوند مطالبه خواهد اقرب باشد قرب مکانی داشته باشد معنایی نخواهد داشت پس حتما خداوند متعال این را اراده کرده است که بفرماید ما خود اون فردیم یعنی کمترین فاصله ای را که شما بتوانید تصور بکنید خداوند متعال از اون هم نزدیکتر است چیزی که دیگه حتی فاصله ای در اینجا نیست بازم خداوند متعال نزدیکتر است خب این چه معنایی میتواند داشته باشد جز اینکه خود همون خداست خود همون وجودش وجود خداست چه معنای غیر از این می تواند داشته باشد؟ از این رو در بقیه آیاتی که نفس قرب آمده اینطور ممکن است که معنا بکنند که وقتی که در این آیات میفهمیم که قرب به معنای عینیت به معنای یکی بودنه لذا در آیات دیگر هم که چه بسا از خود آیفی نفسه این دلالت رو نتوانیم بکنیم اونجا هم طبعاً باید این استفاده رو بکنیم مثل این آیه شریفه که و ازاسه علک عبادی ف اینی قریبون بغره آیه 186 که وقتی بنده من من رو بخواند من رو نزدیک میابد اصلا من خود همون هستم طبعاً قرب باید در آیات دیگر هم همین معنا رو داشته باشه خب در نقد این دلیل و استفاده وحدت شخصی از این دسته از آیات خب ما در ضمن چهار شماره و چهار نکته نقد خود رو انشاءالله بیان میکنیم و در واقع چهار نقد به این دسته از آیات وارد میکنیم اولین نقد اینکه پس خود شما در این استدلالتون اخجر ظاهر نکردید و در اینجا تعویل به خلاف ظاهر بردید و عقل خودتون سنجیدید دیدید که در جایی که فاصله ای نباشد طبعاً اقرب بودن معنایی نداره قرب اصلا معنایی نداره و عقلا درست نیست که چیزی از خودش به خودش نزدیکتر باشد چون این عقلا درست نیست عقلا درست نیست چیزی بین خودش و خودش حائل باشد عقلا درست نیست وقتی که کسی به شخص محتضر به شخصی که به شخصی که در حال اعتذار هست چسبیده بگوییم چیزی از این فرد به اون نزدیکتر از وقتی که اینها عقلا درست نیست خب خود شما این برداشت رو کردید پس طبعا دیگر قرب نیست و اصلا دعیت نیست و این همون وجود خداست پس اولا خود شما در اینجا عکس ظاهر نکردید و از ظاهر خود این آیات استفاده وحدت شخصیه رو نکردید و همینطور که ادعا میکردید که ما نه میخواییم از ظاهر اخص بکنیم فلاسفه و متکلمان هستند یا کسان دیگری که ایمان ندارند هستند که اونها چون با عقل نمیسازد دست از ظاهر برمیدارند شما هم فی الواقع چون دیدید که با عقل نمیسازد معنا ندارد دست از ظاهر برداشتید و تعویل کردید و این تعویل شما فی الواقع یک تعویل بلا دلیل است خب از کجا که حالا که قرب معنا ندارد ما بگیم که پس مراد این است که خداوند متعال همون وجود اون فرد است وحدت هست هویت نیست این تعویل شما از کجا این چه دلیلی برای این براش اقامه کردید بزا نه تنها که دست از ظاهر برداشتید بلکه تمسک کرده اید به یک تعویلی که این تعویل خلاف ظاهر است و تعویل بیدلیل است. هیچ دلیلی بر تعیون بر این تعلیل ما نداریم. چه بسا ما بتوانیم تعویل های دیگری بکنیم. این اولین اشکال. دومین اشکال اینکه خب حالا اگر بنا شد که ما حالا تعویل بکنیم گفتیم که خب این با عقل نمی سازد معنا ندارد اناست که ما تحویل بکنیم خب چرا ما به تحویلی اخص نکنیم که از این تحویل اغرب است به معنای ظاهره به بهتری است که هم شواهدی این تحویلی که میخواییم اعرض بکنیم از عقل دارد هم شواهدی از نقل دارد و با حتی سیاق این آیات میسازد و اون این که مثلا اینطور ما آیه رو معنا بکنیم؟ اینکه خداوند متعال در خود همین آیه نحن و اغرب من حبل الورید سخن از این است که خداوند متعال بیان میکنه که ما حتی به اون وسفسه هایی که در اعماق دل شما اتفاق میفته در اعماق سینه انسان وسفسه هایی که اتفاق میفته که هیچ کس به اون راهی نداره فقط درون خود انسان است و حتی خود انسان گاهی اوقات قافل است که این وسوسه هست قافل است که در درون انسان چه می گذارد. علم ندارد که این کاری رو که داره انجام میده از چه منشأهایی هایی نشأت گرفته از چه وسوسه هایی اینها حاصل شده گاهی اوقات انقدر این در اعماق دل انسان هست که خود انسان هم قافله خب سخن از این است که خداوند متعال بیان می‌فرماید که ما حتی به اعماق این سینه‌های شما علم داریم در آیه ای ان الله یحول بین المرء و قلبه خب سخن از استجابت خدا و رسول از خداوند متعال میخواند که و دعوت می‌کند که خدا و رسول رو استجابت بکنید بعد بیان از این است که ما می‌دانیم که در قلب شما چه می‌گذرد و آیا حقیقتا شما قلبا خدا و رسول را استجابت کرده اید یا نه و در خود آیه نحن اقرب علیه من حبل الورید خوب سخن از لحظات احتزار و مرگه در این لحظات هم خود فرد و خود انسان از ما خودش انقطاع حاصل کرده افرادی رو که در در کنار خودش هستند چه بسا به اونها التفاتی نداره لحظات بسیار است و در این لحظات تمام توجه این فرد و این فرد در حال مرگ به سیطره الهی به سلطنت الهی به حاطه علمی خداوند متعال به تمام لحظات این فرد هست رضا از همه اینها معنایی رو که ما میتوانیم استفاده بکنیم این است که چه بسا خداوند متعال در این آیات میخواهند بفرمایند که ما احاطه تام و تمام به مخلوقات خودمون علمن داریم ما سیطره داریم به تمام مخلوقات خودمون به تمام جوانب وجودی افراد به جز جزء مخلوقات خودمون ما سیطره داریم به اجزاء اجزاء مخلوقات خودمون ما سیطره داریم به اون ریزترین اجزایی که دیگه بعد از اون چیزی تصور نمی شود کرد ما به همه اونها سیطره داریم حاطه تام و تمام به اونها داریم و چیزی از نظر ما غافل نیست و غایب نیست و همه عالم، حتی اونهایی که در نظر ما گاهی اوقات بعید جلوه می کند یعنی اون باطن انسان نسبت به ظاهر انسان برای انسان عبعده برای انسان بعید جلوه میکنه میگه ظاهر خب اقربه اون فاصله بیشتری داره اون عبعده و در سایر مخلوقات هم همینطور ما اون اجزاء درونی رو خب ابعد میدانیم از اجزاء بیرونی دورتر می‌دانیم از اجزای بیرونی خداوند متعال به همه اینها سیطره تام و تمام داره هیچ کدومشون برای خداوند متعال دور نیست و از خداوند متعال فاصله ندارد و سیطره الهی به اون اجزای درونی به اون درونی ترین اجزای انسان به اون درونی ترین افکار انسان به همون نحو هست که به اون اجزای بیرونی هست و این عبادیتی که برای ما مطرح است که اون ظاهر اغرب است از باتن این برای ما انسان ها برای ما مخلوقات مطرح هست اصلا نسبت به خداوند متعال معنا ندارد و همان اندازه که سیطره به ظاهر دارد، سیطره به باطن دارد، به اون اجزاء درونی دارد همه به یک اندازه تحت احاطه خداوند متعال، تحت سیطره خداوند متعال هستند و به عبارت دیگر همینطور که قبلا ما اشاره کردیم قرب مکانی و بعد مکانی اصلا در مورد خداوند متعال معنا ندارد. خداوند متعال که متمکنه در مکان نیست و بودن خداوند متعال در مکان سبب نقص خداوند متعاله که این قبلا بهش اشاره شد. لذا وقتی که بعد معنا ندارد در مورد خداوند متعال چیزی دور نیست به هیچ نحوه دور نیست، به هیچ نحوه دوری نمی شود تصور کرد چه بسا از این تعبیر بشود که قریب و اقرب در حالی که خود قرب هم قرب مکانی هم چه بسا نعنا نداشته باشد لذا مناسبه که بعضی از روایاتی که نفی مکان شده است از خداوند متعال رو ما برای اینکه عزیزان بدانند که از کردیم این بیان هم با عقل می سازد که اشاراتی به این مسئله داشتیم که ما اینکه قبلا داشتیم و همین که با لسان وجودات نازنین اهل بیت اسمت و تهارت سازگار هست که این روایت شریف رو در کافی باب الکون و المکان حدیث دو ادت من اصحابنا که این ادت من اصحابنا چند نفر هستند که بعضیشون قطعا سقه هستند لذا سقه میشه میشوند میتونیم بگیم که در اینجا سند از این حیث مشتمل بر سقاط ان احمد ابن محمد ابن خالد که ایشون سقه هست ان احمد ابن محمد ابن عبی نصر و زنتی که ایشون هم بسیار جلیل و و سقاط هستند قال جا رجلون الاب الحسن الرضا عليه السلام من وراء نهر بلغ یک کسی از اون طرف نهر بلخ خدمت آقا امام رضا علیه السلام رسید فقال اني اسالك عن مساله من سؤال يا آقاجان از شما دارم فن عجب تن فيها به قلت به امامتك اگر جواب بدهید به من به اون چیزی که نزد من هست من قابل به امامت شما میشم فقال الحسن عليه السلام سل اما شئ بپرس از هر چیزی که میخای فقال فقال اخبرني عن ربك متا كان خبر بده از پروردگارت که کی بوده و کیف کان چگونه بوده و علا ای شی انکان کان بر چه چیزی اعتماد خداوند متعال و تکیه خداوند متعال هست فقال ابو الحسن علیه السلام ان الله تبارک و تعالا عین الاین بلا عین خداوند متعال خودش عین و مکان رو خلق کرد در حالی که خودش مکانی ندارد این غلطی که ما بگوییم خداوند متعال در همه مکانها متمکن است در همه مکانها هست خدا اصلا مکان ندارد و باید از خدا نفی مکان بکنیم و کیف الکیف بلا کیف اینی که سوال از چگونگی می‌پرسید چگونه خدا بوده مثلا چگونه از اون وجود واحد این خلق پدید آورده کیف رو خداوند متعال آفریده در حالی که کی خودش کیف ندارد و کانه اعتماده او علا قدرته اعتماد خداوند متعال بر قدرتش هست. فقام علیه الرجل فقبل رأسه سر حضرت رو بوسید و قال اشهدو الله اله الا الله و ان محمدن رسول الله أن عليا وسي رسول الله صلى الله عليه وآله والقيم بعده بما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وأنكم الأعمة الصادقون وأنكم الخلف من بعدهم هم شهادت داد بيقانيقية خضابند متعال و خداوند متعال هم شهالت داد به رسالت آقا رسول الله هم به امامت آقا امیر و ایمه تاهرین بعدشون و امامت آقا امام رضا علیه السلام روایات در این زمینه زیاد روایات بسیار فراونی با اسناد بسیار عالی از جمله روایت شماره پنج همین باب که سند این روایت هم سند است که آقا امیر المومنین فرمودن اینس و ان مکان اینی که می کجا سوال از مکان و کان الله ولا مکان خدا بود در حالی که مکانی نداشت. لذا وقتی که مکان در خداوند متعال معنا ندارد خداوند متعال خودش خالق مکان قرب و بعد مکانی هم معنا ندارد. لذا یا باید قرب و بعد رو به نحو غیر مکانی ما معنا بکنیم؟ یا باید همین معنایی که مثلا همینطور که از سیاق آیات به دست میآید اون سیطره تام الهی به تمام مبعدات و مغربات همه چیزهایی که دور است و همه چیزهایی که نزدیک است خدا به همه به یک نحوه سیطره دارد به همه به یک نحوه احاطه علمی دارد همه به یک نحوه تحت قدرت الهی هستند لذا خب اگر بنا باشد که ما تعویل بکنیم خب اینجور تعویل میکنیم که با ظاهر آیات سازگارتر است که تعویل به سیتره به حاطه علمی به حاطه قدرتی خداوند متعال بکنیم وقتی که ابعد نیست بعد معنا ندارد هیچ چیزی بعیدتر نیست به حسب مکان از چیز دیگر نسبت به خداوند متعال از این تعبیر به اغرف شده است خب ما می اینطور معنا بکنیم و از این جهت مشکلی ندارد کما اینکه که خب معانی دیگری هم می شود کرد مثل اینکه که غرب و بعد رو به نهوه غیر مکانی معنا بکنیم که خب این هم بحث دیگری میطلبه لذا حتی بنابر تعویل هم باشد خب تعویل های اغرب از این مسئله از این تعویلی که شما کردید وجود داره اتفاقا چیزی که اصلا به ذهن حتی در تعویل هم خطور نمی کند همین یکی بودن خدا با خلقش هست نقد سفرومی که ما می اینه که تازه اولا شما متوجه نشدید بلکه خود ظاهر این آیات هم اینطور نیست که بیمعنا باشه و مشکل داشته باشه مخصوصا بر ممنی شما که خداوند متال رو هم در مکان میدانید هم غریب مکان میدانید هم غریب مکانی و قرب مکانی رو در خداوند متعال شبسا جاری میدانید وقتی که همه اعیان همه مخلوقات خداوند متالند بعضی به بعض دیگر نزدیکترند یا به تعبیر حالا دقیقتر در حالی که حالا فرقی نمی کند به اثر معنا همه مخلوقات وجودشون همون وجود خداست خب اینها نسبت به همدیگه قرب مکانی دارن از این جهد میشود معناه کرد قرب مکانی رو خب با این بیان شما این آیه براحتی میشود به ظاهرش اخص کرد با اون چه بسا مراده از انسان در لسان این آیه و حتی آیات دیگر اون مجموع مرکب از روح و جسم انسان نباشه بلکه مراده از انسان اون حقیقت ورای این جسم انسانی باشه کما اینکه ممکن است شواهد دیگری از لسان خود آیات و روایات در این زمینه به دست بیاریم در فهم معنای یک کلام باید بدانیم لسان اون کلام لسان اون گوینده در این معنایی که به کار برده چیست از این چه چیزی را اراده کرده رضا ممکنه بگوییم که اون چیزی که از لفظ انسان در این آیه و چه بسا آیات دیگری استفاده شده و اراده شده اون حقیقت ورای انسان است آیا به روح انسان صدق انسان نمی شود؟ چرا می شود؟ در حالی که ممکنه بگیم که این جسم رو نداره لذا در اینجا هم معنای انسان اون چیزی که اراده شده همون روح انسان و اون حقیقتی که ورای این جسم انسان حالا اون چی هست خودش بحث مفصلی است و خداوند متعال به اون حقیقت ورای این جسم از این جسم و از شما نزدیکتر است خب فاصلی بین این جسم و اون روح وجود داره و شما حقیقت خودتون رو این جسم می دانید و بیشتر از جسم به ذهن شما میآید خداوند متعال در این فاصل قرار گرفته است ان الله یحول بین المرع و قلبه در بین فاصل جسم و خدا و اون روح و اون حقیقت ورای این جسم قرار گرفته حالا به حسب معنایی که شما میکنید و خداوند متعال رو قریب مکانی میدانید یا به نسبت به اون روح شما خداوند متعال نزدیک تر است تا جسم شما به اون روح شما خب میشود اینطور معنا کرد و در اینجا کاملا ظاهر آیه حفظ شده و قرب مکانی هم تصور میشود کرد و در اون لحظات احتزار هم همینطور در اون لحظات احتزار که روح در حال جدا شدنه و چه بسا جدا شده مقداری از روح خب ما به اون روح نزدیکتر هستیم تا شما به اون جسم انسان لذا میشود حتی به ظاهر این آیه با دقتهایی های کرد و چهارمین نقدی که بیان میکنیم اینه که اون چیزی که این آیه و آیات دیگر و روایات همه دارن این مسئله رو فریاد میزنن دلالت تام و تمام به اون دارن دارن این رو داد میزنن اینه که هم خداوند متعال هست هم مخلوقات هستند خدا میفرماید یک شما هستید یک من هستم من به شما نزدیکترم دعیت در اینجا هست لذا طبق مبنای وحدت شخصی که آن چیزی که حقیقت هست اون حقیقتا وحدت دعیت این مجازی است اینی که صدق وجود به کسرات بکند این مجازیست در حالی که در این آیات خداوند متعال همه را هست می داند می همه هستند شمایی هستی منی هستم اون شخص محتضر هست من نزدیکترم شما هستی قلبت هست من نزدیکترم به شما از قلبت در اینجا نسبت هستی به همه اینها به نحو حقیقی داده شده اگر بخوایم ما نسبت هستی رو از اینها بخوایم این رو مجاز تلقی بکنیم این خودش خلاف ظاهره و کما اینکه همه عزیزان میدانند خود بیان مجازی نیاز به معونهی زائده داره نیاز به قرائن مختلف داره که ما بتوانیم به اون معنای ظاهری بکنیم به معنای مجازی بکنیم لذا ظاهر کلام اینها همه انتصاب وجود به کسرات به نحو حقیقی است، و مخلوقات به نحو حقیقی است، دعیت همه اینها حقیقی است که همه اینها نفیه وحدت شخصیه میکند کند به ظواهرش همه اینها نافی وحدت شخصیه است که در وحدت شخصیه همه وجودات همان وجود خداوند متعالند، در عین به خداوند متعال و کسرات به الارض و المجاز نسبت وجود به اونها داده میشه پس در اینجا بنابر خود حرف شما و حرف خود ابن عربی فی الواقع شما در اینجا اگر بخواید اخص به این ظاهر نکنید ایمان به خدا و رسول خدا ندارید بنابر حرفی که خود ابن عربی زد و چون از جای دیگر وحدت شخصیت رو پذیرفته اید میخواید این رو تحمیل بکنید به این آیات و به این روایات بنابراین نتیجه بحث استدلال به این آیات و روایات این شد که این آیات نه تنها که ظاهرشون دلالتی بر وحدت شخصی وجود نداره بلکه ظاهرشون نافی وحدت شخصیه هست و اینی که بخواهیم ما این آیات رو حمل بکنیم بر وحدت شخصی وجود یک تعویل بسیار است که در ازهان سالم اصلا این تعویل خطور نمی کنه که از قبل این رو نپذیرفته باشن این خطور نمیکنه و با مکابله بسیار زیادی ما باید این آیات رو حمله بر وحدت شخصی وجود بکنیم پس دسته اول استدلال به آیات قرآن در وحدت شخصی وجود این استدلال استدلال باطلی است و هیچ دلیلی براش نیست و بلکه خلاف بحثه شخصی وجود هست و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.